سلام دوستان همراه کانال هزار افسان امیدوارم حالتون خوب باشه از کتابی که مشخصاتش ذکر شد داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام داستان حاسبو روزگاری زنی بود که یه بچه داشت پسرکی به نام حاسبو از همون کودکی مادرش در فکر بود که اون خوندن بیاموزه اونو به مدرسه فرستاد پس از پایان مدرسه اونو به دکان خیاطی فرستاد تا دوخت و دوز یاد بگیره. اما اون چیزی یاد نگرفت. پس اونو به دکان آهنگری فرستاد. اما این کارو هم یاد نگرفت. خلاصه هر جایی که میفرستادش تا حرفهی بیاموزه چیزی نمیاموخت. مادرش که نمیخواست اونو به انجام کارایی که دوست نداره وادار کنه روزی به اون گفت خب پسرم تو خونه بمون و اون تو منزل موند و کارش شد خوردن و خوابیدن روزی پسر به مادرش گفت شغل پدرم چی بود؟ مادر گفت اون طبیبه با بود. حاسبو پرسید پس کتاباش کجاست؟ چند روز گذشت و نشونی از کتابا به دست نیومد تا اینکه روزی حاسبو که همه جا رو خوب گشته بود اونا رو پیدا کرد. بیشتر کتاب رو هشره ها خورده بودن، اما یکی از اونا سالم بود. حاسبو اونا برداشت و مطالعه کرد. یه روز صبح که اون تو خونه بود، درباره مطالب کتاب پزشکی به فکر فرو رفت. بعد چند همسایه که از اونجا میگذشتن به مادرش گفتن، بزار پسرت همراه ما به جنگل بیاد تا هیزان بشکنی. ساکنای اون ناحیه هیزم شکن بودن و هیزما ها رو بار علاق میکردن و برای فروش به شهر می مادر ما جواب داد بسیار خوب. فردا براش الاق میخرم و همراه شما میفرستم. الاق خریداری و سرکله همسایه ها پیدا شد. اونا تمام روز سخت کار کردند و غروب به طرف شهر رفتند و هیزما ها رو به قیمت خوب فروختند. اونا تو شش روزی که به جنگل رفتن درامده خوبی داشتند، اما روز هفتم بارون گرفت و هیزم شکنه زیر تخت سنگی پناه گرفتند حاسبو عین خیالش نبود و همونجا موند جایی که نشسته بود تکه سنگی و که نزدیکش بود برداشت و به زمین انداخت همین که سنگ به زمین خورد صدای توخالی برخواست اون همراهاشو صدا کرد و گفت بیایید گوش کنید، انگار زمین تو خالیه. اونا گفتند دوباره بنداز. اون سنگو به زمین پرد کرد. پسر گفت بیایید زمین رو بکنیم. همگی مشغول کندن زمین شدند تا به گودال بزرگی که مثل چاه آب بود رسیدم. گودال پر از اصل بود. اونا گفتند فروش اصل سودآورتر از هیزامه. پول خوبی گیرمون میاد. خب حاسبو چون تو اینجا رو پیدا کردی حق توست که توی گودال بری اصل و جمع کنی و به ما بدی تا به شهر ببریم و بفروشیم. بعد پولش رو بین خودمون قسمت میکنیم. روز بعد هر هیزم شکن هرچی ظرف و سطل داشت با خودش آورد. حاسبو او ظرفها رو پر از اصلیم کرد و به اونا میداد. تا سه ماه. این کار هر روز ادامه داشت. در پایان سه ماه اصل تقریبا تموم شده و ته گودال فقط مقدار کمی باقی مونده بود. گودال خیلی عمیق بود و از بالا اینطور طور به نظر می رسید که درست وسط زمین قرار داره. با دیدن این وز مردا به حاسبو گفتن ما طنابی به زیر بغلات می و تو رو پایین می فرستیم، تا بتونی هرچی اصل مونده جمع کنیم. این کارو سریع انجام بده بعد تو رو بالا میکشیم. پسر جواب داد بسیار خوب همین کارو میکنیم و ته چاه رفت و هرچی اثر مونده بود جمع کرد. اون فریاد زد کارم تموم شده منو بالا بکشید. اما اون مردا با هم پچپش کردن و گفتن حالا که تهمونده یا اصل و گرفتیم ولش کنیم و بریم سهمشو هم بین خودمون قسمت میکنیم. به مادرشم میگیم پسرتو شیر شکار کرده و به جنگل برده ما هرقدر دنبال شیر دویدیم تا حاسب رو نجات بدیم نتونستیم اونا از جا برخواستن و به شهر رفتن و اصل و فروختن بعد هرچی بین خودشون قرار گذاشتن به مادر حاسبو گفتن زن بیچاره به تلخی گریه سرداد اون چند ماه به اعضای پسرش نشست پس از تقسیم پول یکی از مردا گفت بد نیست کمی هم به مادر دوستمون بدیم. اونا مقداری پول به مادر پسر دادن. هر روز یکی از اونا مقداری برنج، روغن، گوشت و پارچه برای اون می برد. طول نکشید تا حاسبو فهمید که همراهاشون ته چاه رها کردن تا بمیره. اون آدم با دل و جرعتی بود و دلش روشن بود، که میتونه از اونجا نجات یابه. همه جای و وارسی کرد تا راهی برای خروج پیدا کنه شبا ته گودال میخوابید و صبحا ذره زر, زر اصل که هنوز به ته گودال چسبیده بود جمع میکرد و میخورد چند روزی به این نف گذشت یه روز صبح که روی سنگی نشسته بود و اصل میخورد اقربی بزرگ از جلوه پاهاش رد شد از ترس اینکه نیشش نزنه تک سنگی برداشت تا و بکشه اما نگاها فکری به ذهنش رسید این اقرب حتما از جایی اومده شاید جایی شکافی باشه بهتره ردشو دنبال کنم سرانجان رو بدنه گودال سوراخی کوچیک پیدا کرد کرسوی از اون سوراخ بیرون میزد. قلبش از شادی به تپش افتاد کاردشو رو در آورد و زمین و کند تا چاله کوچیک به سوراخی بزرگ تبدیل شد. اول از اون از آن سوراخ گذشت. وقتی به طرف دیگه رسید، در برابر خودش فضای گسترده‌ای و دید که راهی از وسطش میگذشت. پا به راه گذاشت. رفت و رفت تا به قصری با دروازه طلایی رسید. دروازه باز بود. از اون گذشت. قصر تالاری بزرگ داشت و وسطش تختی ساخته شده از سنگای قیمتی گذاشته بودند روی تخت لرمترین نازبالشا قرار داشت. جلو رفت و روی تخت دراز کشید و به خواب رفت. چون که زمانی طولانی سرگردون بود. گاهی سر و صداهایی تو تالار می شنید. حواسش بود که کسایی تو تالار رفت و آمد می و سربازایی اونجا گرد آمده بودن. سلطان مارا به قصد می اومد و همه خود را برای مراسم تشریفات آماده می کردن. سلطان مارا با همراهاش وارد تالار شد. اما همه از تعجب خشکشون زده بود. مردی جوان روی تخت سلطان نمیده بود. سربازا هجوم بردن تا جونش رو اما سلطان مارا گفت کاری به اون نداشته باشید. برام صندلی بیارید. سربازا که سلطان و شونه های خود هم می اونو به صندلی نشوندن. وقتی روی صندلی نشست و آروم شد، رو به سربازا کرد و دستور داد تا غریبه رو به آرومی بیدار کند. بیدارش کردن. اون صاف روی تخت نشست. دور تا دور خودش رو پر از مار دید. یکی از اونا که جامعه سلطنتی به داشت بسیار زیبا بود. حاسبو پرسید؟ شما کی هستید؟ من سلطان مارا هستم. اینجا هم قصرمه. حالا میگی خودت کی هستی و از کجا اومدی؟ اسمم حاسبوه. نمیدونستم نمیدونستم اینجا قصر شماست. منم جایی برای رفتن نداشتم. سلطان مارا گفت پس چند روزی هم اینجا بمون. بعد به سربازاش گفت که از چشمه آب و از جنگل میوه بیارن و به مهمون تعارف کنن. حاسبو چند روزی تو قصر استراحت کرد و خورد و خوابید. بعد دلش برای مادر و زادگاهش تنگ شد. به سلطان مارا گفت بزرگ باری کن و منو به خونم بفرست. سلطان مارا جواب داد اگه به خونه بری باعث مرگم خواهی شد. حاسبو جواب داد چون این چیزی امکان نداره اجازه بده برم. سلطان مارا گفت اما اطمینان دارم اگه بذارم بری باز میگردی و باعث نابودیم میشی. پس نمیتونم آزادت کنم. اما حاسبو اونقدر التماس کرد تا سلطان گفت قسم بخور وقتی به خونه رسیدی به گرمابه عمومی که افراد زیادی به اونجا میرن پا نذاری. حاسبو قسم خور. سلطان به سربازاش دستور داد که اونو تا نزدیک زادگاهش برسوند. پسر جبرون به خونه رفت. قلب مادر از شادی به تپهش افتاده بود. در همون اوقات سلطان اون ناهیه بیمار شده بود و تمام دانایان گفتن که تنها داروی درمان بیماری اون گوشت سلطان ماراست و تنها کسی که میتونه اونو به دست بیاره مردی با علامتی عجیب روی سینهش. به دستور وزیر همه ساکنای اون ناحیه باید تو حمام جمع می شدن تا چنین فردی و پیدا کنند. تا سه روز ها سبو قولی که به سلطان ما را داده بود به یاد داشت و به حموم نزدیک نشد. یه روز صبح که هوا بسیار گرم بود اون طاقت از دست داد و زیر قول خودش زد. همین که جامه شده ورد چشم وزیر به اون افتاد. وزیر گفت ما رو به محلی که سلطان ما را زندگی میکنه ببر. او اون گفت من چون اینجایی نمیشناسم نمی شناسم. اما وزیر که حرفش را باور نمیکرد کرد دستور داد اونو ببندن و کتک بزند. اونقدر پشتش شلاق زدن که مثل لبوش شده بود. حاسه بود تا قد و فریاد زد ولم کنید. شما را به اونجا میبرم. همه همگی پا به راهی طولانی گذاشتن تا سرانجام به قصر سلطان مارا رسیدن حاسبو به سلطان گفت تقصیری ندارم فقط نگاهی به پشتم بنداز ببین چه بلایی به سرم رو مجبور شدم حرف بزنم سلطان پرسید حاسبو جواب داد وزیر دستور داد سلطان مارا با اندوه گفت پس باید بمیرم، اما خودت منو به قصر ببر. پس حاسبو سلطان مارا رو به دوش گرفت. در طول راه سلطان گفت، زمانی که به قصر رسیدیم کشته خواهم شد. گوشتم رو اما حواست باشه که مقداری از آبیو که در اون پخته شدم برداری. آب رو تو ظرفی شیشه ای و پیش خودت نگه دار. وزیر که متوجه این کارت میشه دستور میده که از اون آب بنوشی. همین کارو بکن. با نوشیدن آب پزشک بزرگی خواهی شد. وزیر از تو میپرسه آبو نوشیدی؟ پاسخ بده بله و مقداری هم برای شما گذاشتم. وزیر با نوشیدن آب در جامی میره و تو به آسایش میرسی. اونا به شهر رسیدن و هرچی سلطان ما را گفته بود همون شد. سلطان از حاسبو خوشش اومد و اونو پزشک مخصوص دربار کرد. اون هم بسیاری از بیماره رو معالجه کرد. اما همیشه به یاد سلطان مارا بود و غمی جانکاه وجودش در دربار می گرفت. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها ابیات های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصر های باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه اسهایی از سفر دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزادهها و شاهان با اسب تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای های دی و غول و پری رشادت های, های قصهها همه و همه و همه, همه, و همه, همه, و همه در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی ادساین مهران دوستی